بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشتف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد بحث السلاح هذا بحث عندة الأحكام الآن بحث عقيدة بحث عقيدة كفتلك نيازة كمار مرتاب تقيق كامل و مفهوم واضح مطرحش بکنیم بحث عقیده رو چون بحث عقیده بحث هر است یعنی گره اون چیزی که باعث کلمه اون گره داشته باشه اون اعتقادی که پیامبران برای اون فرستاده شدن اون اعتقادی که براش نشون ماد، ابراهیم ومات. و ماد پیامبران زحمت کشیدن از آدم تا محمد صلی الله علیه و سلم صدا بی که چهار هزار پیانبر اومدن کونشون رکته شد پیانبری می اومد با سنگ زده می با نمیدونن که آتش زنده میشد، با سنگ میشد، فلان میشد، شود دحمت کشیدن برای حفظ اعتقاد برای اینکه ما حفظ بشیم برای اینکه ما روستسید جلو به خداوند پیستیم از این بالاتر حق خود خداوند چه بالاتر از این که ما اون چیزی که قلبمون نیاز به اون داره اونم خداوند باعث یک تا درباره حرف و سخن بگیم درباره ذاتش درباره قدرش درباره حقش که خود رسول وقت الله علیه و سلم توصیه میکنن سوال میکنن معاذ اجابه البته که ما حق الله اعلم حق خدا رو میدونی چیه حق خداوندی که متاسفانه خب از مجتمعات همون از جامعه همون اگر درش با یک دید نگاه بکنیم میبینیم که این حق گمنامونده جامعه جامعمون نمیشته این حق رو حق خدا اینجاست که خدامند ورده تعالی در قرآن الله جل چند و ما قدر الله حق قدره قدر خدا رو ندونستم قدر خدا رو ندونستم و من قطر الله اون چنان که خداون باید تعظیم بشه اون چنان که باید خداون شنافته بشه خداون را نشقفتن آیا ما واقعا خدا را شنافیم حق دینش را فهمیدیم آیا واقعا برای خدا زحمت کشیدیم اون وحی که بر رسول الله نازل شده بود آیا واقعا خوندیمش مدارسه کردیم این عقضی که در قلب من این گرهی که باید در قلب من بسته بشه ما باید ببینیم چقدر این گره؟ چقدر اهمیت دادیم به این گرهنی که قلب موادش بسته شده بسته بشه. من دیروز صحبت کردم در مسجد ایمان پریشت یک جوان رو دیدم میومد به مسجد دیدم گفتم بذرخشا با لب خندان گفتم ببرش روی پیراهن تلیبه این حبو بیش گفتم روی پیراهن تلیبه گفت برو که دل با باشه. باشه وقت عصبانیت خاتونی گفتم به خودم گفتم سبحان الله من طلب کارم یا اون طلب کاره. اون داره مقدسات من را احانت میکنه یا من این سلیف یه خارج کارج از درسته ولی من میخوام اهمیت این اعتقاض رو بهتون برسنم بهتون بگم چقدر مردم غایبن از اون حیکل بنان هیچ اون زیارت کنان هیچ اون استخار کنان هیچ من این اشخاص رو نمیخوام الان بگم یک جوان عادی ما با عنوان اشخاصی که خدا را شناختیم خدا را میدونیم که حق برگردن اون داره اون ایمانی که دادیم، داریم، میخوام زیر دعالش ببریم. این جوان چرا این این کار کرد؟ چرا اینچین این سخنی گفت؟ خیلی واقعا نراحت کننده. یک سلیب نشانه چیه؟ نشانی اولا احانت به پیامبر خدا، عیسی علیه السلام. اعتقاد ما در عیسی چیه؟ سلیب کشته شده؟ به سلیب کشنده شده؟ خدا؟ تسلیب یه نیچی؟ این سلیب یه نیچی؟ سلیب یک بود. با قطره همه لیکن قیام برساله می چی قیامت اینکه چی؟ ایسا وقتی که میاد یک سر و سلیب سلیب را میشکنه چون بوته خدا را سر را غیر از اون احانت به ایسا علیه السلام غیر از اون احانت احانت به خدا هم هست چون اعتقد دارین دارن که این چیز دفع مکروب میکنه دفع زرار میکنه و جلب مصلحت میکنه رسول دیوت چون این جوان از نمیدونه که این جرمه این اهانت به خدامنده و ما قدر الله حق قدره دل صاف بودن من گفتم دل وقتی که صاف باشه عمل بد باشه چی میشه انسان میشه امتی انسان میشه فرعون خیلی وكان بدر رسول الله صلی الله علیه و در انحانه سكت رفاتهش في أول سكرات مر إن للموت سكرات خاص ده عندهش عبد رمي كسره بيشينيش. ميقول إن للموته سكرات إن للموت سكرات اللهم رفيق الأعذار ميقول لعنة الله على اليهود والنصارى استخدوا القبور أنبيائهم مساجد. غم توشين غم اعتقاد ده الخدر ودره. اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد من دون الله. اللهم لا تجعل قبري و اینا یور بدن دون داد. دا. توجیه، غم توجیه در داره، غم اعتقاد در داره. ببینیم امت اسلام چقدر کم کاری کرده در بحث اعتقاد. در اعتقاد به خود خدا باد. این آیه اگر میخواید بفهمی نگاه خودت بکن. تو خودت چقدر خدا را فهمیدی؟ چه برای مردمی که اصلا وقت خودشون برای علم شرعی، علم قرآن و سنت نبود. و ما قدر الله حق قدره. قدر خود را ندانستن. چیکار برای خدا؟ جهاد کردن جهاد کجاست؟ اگر در جامعه این بیس هزار نفری قش رفت در, در نظر بگیریم اگر قرار باشد هزار نفر داییه نباشد این جامعه به درد میخورد جامعه نیاز داره. از هر بیس نفر هز یک نفر مصلح باشد یک مسجدی کنان در افتر مزقیم نفر پنجه نفر یک آدم درستی میخوان اهل این مسجد ما متاسفانه به شکل ظاهر نگاه میکنیم به امران مساجد آوابادی مساجد از داخل ظاهر و شکل و بنیان نگاه میکنیم چقدر چند در چند در چند باشه و فلان باشه ساخته بشه ولی به اون اشخاصی که اون مساجد رو تحویل بکنن تحویل بگیرن اون احتمال به اون نداریم این اشخاص واسه ساخته بشه اگر قرار باشه اینچینی اشخاص نباشن بچه‌هامون چه کار بکنن این مدرسه چی بشه خب اگر واقعا اگر واقع، اگر اینچینی واقعا تلخی مدرسه هستیم آیا واقعا میتونیم استقامتی بکنیم در مقابل دشمن آیا میتونیم جهاد را برپا بداریم آیا امت توانای جهاد را دارد واقعا بعضی از آیات وقتی که انسان میخونه انسان اش میریزه امروز خطبه بود. اون آیه‌ای که درش مطرح شده بود واقعا آیهی ای بود خطبه میگم واقعا انسان اش میریز بعد جنگ و بعد اون حسبون الله و نعم الوکیره که صحابه گفتن توکلی که به خدا داشتن نصرتی که به خدا دادن و خداوندم تعهد بر خودش گذاشته بود بر نصرت آنها چرا خداوند آنها را نصرت کرد؟ چرا خداوند تعهد گذاشت که نصرت بده؟ انسان الله یا اینه سر آنها اونا نصرت دادن خدا حق خدا را اجرا کردن در ندیشید در ندیجه خدا را نفرده شده. ما اگر خدا را نفرده ندیم از حق خدا را دفع, از حق، از حق دفع،, دفع نکنیم وای بر ما. دیگه جهادی که برپا نمیشه مثل الان حالی که آمان داریم هیچ بزبطت ها شکست خورده هم میشه. بس باید حمت ها بالا بره. باید نفس ها امیق بشه. باید چشم ها باز بشه. خوش ها باز بشه. احساس مسئولی هست کنیم. اگر ما بنشیم خودش حاضر به خدا بده و بدونیم اگر سنگ تمام باشد اگر خودمون رو بکنیم خداوند ما میکنه یا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجت تجاه الله خدا بکنیم. تو ما حفظ بکنه و مراست رو کند در دعوتمون به ما توفیق بده بده از دعوتمون از ما خودمونم دفاع بکنه خب این فقط مخدمیم در بحث اهمیت این بحث عقیده چقدر مهمه چقد ما چقد بيشتر و چقدر گمنامه در جامعه و چقدر خودت خودتون بیشتر و بیشتر تیمی بدید که چقدر واقعا ما عقبی بحث عقیده از بحث ایمان آغاز میشه چرا بحث ایمان را گرفت بحث إيمان وعذابيهم بخاطر حديث جبريل عليه السلام بخاطر حق شرف خدمة بخاطر منزلة خدمة بحث إيمان وعذابيهم جبريل مال مل إيمان الإيمان ان تؤمن بالله بس بحث إيمانه إيمانه بخدمة وتعالى دش صفات بحث إيمانه بحث توحيد أن تؤمن بالله هني توحيد على ما بعد هم إيمانه براد يقول هني هم هني توحيد را پا به پای رسول الله می نشینه و دستای خودشون رو روی پای رسول الله می و سوال میکنن مل ایمان از ایمان سوال میکنن چرا از ایمان سوال میکنن چرا نگفتن که اولاق چیه چرا نگفتن از چیه چرا نگفتن شطور چیه چرا گفتن ایمان چون ایمان یک حقیقت شرعی داره الحیاء من ایمان الإيمان وبيعونه سبلغون شعبة أدناها أعلىها شهادة أن لا إله إلا الله أدناها إما تصل أنز عن طريق رميها دربته ببحثي كذالك حديثه إيمان أقصده عندي شعبة داره شر ما يقول أقصده عندي شعبة داره بعد بعد دار بعد بحث بعده شهادتين رميها ره ميخاد إيه إنه بيجي إيمان يك لفظ شرعي إيمان مقصد مقصدش لغوی نیست. مقصود از این ایمان مقصود لغوی نیست. حالا خب ما بیا براتون میگیم ایمان. ایمان اون بین لغوی ها و نصوص قرآن و سنت بررسی بکنیم. این در اصطلاح ببینیم چیه و در لغت چیه. بحث ایمان در لغت اونجوریه که ائیمه لغت میگن مثل ابن عثیر در نهای بیغیر اول حدیب و ابو عبيد باست السلام سلام و جوهری در غیره از علماء این چیدید میگن که ایمان مترادف با تصدیق ایمان در لغت یعنی تصدیق ما میخوام الان بررسی میکنی. ببینی واقعاً هر اینا درست ایمان واقعاً تصدیقه یا خیر حالا میاد که چه قمتی ما میکنه شما به این که تصدیق یا نه میاد بحثش میاد که چرا ما این بحث آغاز کردیم ما از صفر میگیم می‌گویند از تیکه به ما میخوام در عدل و بطلات باشیم قل هذه سابیل ادرا الى الله بصیره ما میخوام در ما میگیم در جواب لغوی ها حرفتون درست ایمان مترادف هست با تصدیق لیگن تصدیق ترادف تامو کامل نداره هیچ هیچ برد خیلی کم میشه که در لغت عربی دو تا کلمه داشته باشیم از هر لغت با هم مترادف باشه مثل هم باشه ما میگیم از لهاد لغت سه فرق اساسی بین ایمان و بین تصدیق. از خود لغت. فرق اول. ما وقتی که میگیم ایمان. من به فلان چیز ایمان دارم من فلان چیز باور دارم. یعنی تصدیقش کردم. تو تصدیق من باور میاد. در جمعه ما من به فلان چیز ایمان دارم من به فرشتگان ایمان دارم اینجا بحث امر غیبی هست یا امر حسی غیبی میشه گفت من فرشتگان را تصدیق دارم بحث تصدیق در امر فرشتگان به کار برده نمیشه تصدیق در امر حسیه مثل عبی میکنی میگه که من ایمان دارم به کسی میگه کسی نمیگه من ایمان دارم به, به عبر میگه من دارم، باور دارم قبول دارم که عبری بلای آسامان هست صدق مثال بیره اینجاست که ما میگیم فیهی شق دو رو دو سی دو من ضد ایمان کفره ولی ضد تحضیق تحضیبه من اگر دفتم بالا به من میگید کافری به درو بفتیم بهم به این میگید درو بودی نمیگید کافری ولی اگر کفتم که من ایمان دارم به فرشتگاه یا ایمان دارم به خدا و من بر عکس اون عمل کردم من میگید کافر یا میگید مکذب یه کافر کافر شده دیگه با اون تکذیب هم کافر شدم خود لفظ ایمان تن به تنهایی متعدی نمیشه به تنهایی بر چیز اطلاق نمیشه باید یک پسفند و پیشفند دیگری داشته باشه مثلا ایمان میگیم آمن تو بیه. ولی در تصیب میگیم فدخت تو میگیم آمن تو میشه بگفت آمن تو ایمان خود به خود خودش به تنهایی مسعدی نمیشه باید بگید آمن تو بید نمیشه گفت آمن تو آمن تو باید بگید آمن تو بید پس ستا فرق احساسی ایمان بر غیبیات اطلاق بیشه ولی تفتیق نه ایمان زدش تکزیبه ولی تفتیق زدش بگرسی ایمان زدش کفره ولی تفتیق زدش کذب و ضرور و تکزیبه و و من گفتیم ایمان خودش به تنهایی متعددی نمیشه اطلاق نمیشه بلکه با پسند یا پیشفند دیگری ولی تصدیح خودش متعددی میشه اطلاق میشه با خودش این ستا فرق اساسی بین ایمان و تصدیح در لغت پس الان ما در تعریف لغوی کلا خلاصه خلاصه این فروغه که گفتیم چی میشه بگیم در جمعبندی فرق بین ایمان و تصدیق ایمان چینه ایمان میشه تصدیق همراه اطمینان همراه اقرار به غیبیات همراه اعتماد ایمان شامل سره تصدیق با یک ایمان به غیبیات تصدیق با یک اعتماد اطمینان محکمی در خود لغت ایمان شاملتر از لبز صدق پس شما الان فهمید که اونهایی که اومدن ایمان را خود ایمان به خدا را گفتن شناخته یا گفتن تصدیق فهمیدید که در چه گمراهی عمیقی به سر بیبرند. حالا ما شبه هاشونم ما میاریم و بر تک، به تک شبه هاشونم جواب خواهیم داد. بدونید اهمیت این بحث در کجاست. احمد این بحث در اینه که چهار تا دانشگاه ها درس میخونند اون جوان تو خونه نشسته اون بچه مدرسه جلو تلویزیون نشسته الهه خمشهی و نوار سروش رو گوش میده میگه ایمان نیشتنا یعنی حالا ما ببینیم ببینیم این بدبختی و این چه چی چیز بار میاره جامعه چی کار میکنه و خدا اون شخصی اعتقادی درش نفوز بیدا میکنه اونم خاطر چی؟ جهل به لغت عربی ندونستن مداخیل و مخارج لغت عربی سبب شده چه های عمیقی در خود امت ایجاد بشه چه خرافات عقلی پیش بیاد چه خرافات اختلافات نمیدونم فکری پیش بیاد همش به خاطر اینکه که الفاظ خدا بر حسب مراد خدا بلکه بر حسب مراد عمی لغت هم نفهمیم. بر حسب لغت عربی هم نفهمیم. بر حسب لغت عربی هم ما نفهمیم. نه اینکه تنها بر حسب مفهوم شرحش. ایمان واضحه ایمان در شهر ما در خود حدیث ما نگاه میکنیم و ایمان و قدران و سربلونه چعبه اعلاها شهادتا لا اله الا الله بلاترینشیه شهادت شهادت چیه نطقه به زبان و ادناها خاییترینشی ایمان تطور ازران طریق با درست عمل بکن نماز بکن روزه بگیره این عمل است. و بعد ثبوتی چیه؟ شعبه من و شعبت منال ایمان چیز چیست؟ که در قلب؟ این ستا چیز یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره کردن که شامل مفهوم استلاحی کلمه ایمانه اعتقاد به قلب عمل جماره و به زمان این ایمان استلاحیه ایمان اصلاحی که در این حدیث اشاره هش... شده حالا ما ببینیم قرآن و سنت رو ما بکنیم. ببینیم در آیات قرآن و همچنین در سنت ایمان به چه معانی اومده اونهایی که گفتن ایمان به معنای تصدیق گفتن خداوند در قرآن در قصه یوسف و یعقوب یعقوب به برادران یوسف چنین گفت برادران یوسف به یعقوب چینین گفتند گفتن. و ما پدرشان چینین لنا، علمای تفسیرم ابن كثير، از جنوب دیانها میگوید ای انتما ما انت, انت به مصدقن لنا تو برا تحضیح نمی کن. آیا این مفهومی که از این آیه برداشت کردن در آیه سور یوسف از حرف برادران یوسف به و ما انتا به مؤمن لنا آیا به معنای تحضیح درست یا نه خیر اشتباه اون امری که حیله اردن در نزد پدرشون وقتی که آوردن اون پیراهنشون با خونه اون گوسرد آیا امر غیبی بود یا امر حسی آیا یعقوب ای حضور داشت که اونجا را ببینه که بعد که شما دروغ گفتید بعد اینا گفتن که تو به ما قبول نداری ما تصدیق نمی‌کنی یا اینکه اینجا بحث غیبی هست و بحث سراتر از بحث سراتر از بحث تفتیقه همراه اعتماده چرا؟ چون یعقوب سرور نداشت گسفندو ندید اون بعد اون گربی که گفتن تسرت خورده یعوزفو خورده اون گربو ندیده و از علم غیبم باخبر نیست قیام از علم غیب باخبر نیست چطوره که بعضی از علم غیب غیر از قیام علم غیب باخبره. کسی یوسف یاد دیگری ما داد دیگری من قصه ها جلوه چشمه مباشه عبرده نحن نقص عليك احسن القصد برای چی؟ برای ایجی عبرده اولی یوسف با همین باقوات بشه عبرده یعفور اتئلم غیب و خبرنی یعفور تا زمان این به وصف میدن و ما انت المؤمن ان رب ما را باور نداری باوری همراه اعتماده باوری همراه اعتماده با استدلال به این آیه بعد اینکه ایمان به معنای تصدیق درست نیست بلکه در این آیه ایمان به معنای تصدیق همراه اعتماده تصدیق همراه اعتماده دومین معنایی که اومده از خود کلمه ایمان که در سیاق خود آیه در خود جمله یعنی بر حد اون جمله شنفته میشه مثلا در آیه مجادله 22 مجادله 22 آیه قبل یوسف بود ایفته این آیه مجادله 22 چی نیم در این میفرمایند. میفرمویند که کتب فی قلوبهم الیمان اولائی که کتب فی قلوبهم الیمان در اینجا مقصد مقصد اعتقاد با اعمال قلبی چون خداوند چی گفت اولایی که کتبه فی قلوب هم یا هم گفت فی قلوب هم پس بحث اعمال خاصیه که جز اعمال و اعتقاد قلبه و دایی هم به معنی عمل خاصی عمل عامی میاد به معنی عمل خاصی عمل عامی عمل خاص چیلین خودمان میفرماییانی وما كان الله ليضيع إيمانك وما كان الله ليضيع إيمانكم بقرة شلة. إن جب بحثا وما كانوا بحثي كمسلمان ربع بين المغذين وما كان الله ليضيع إيمانكم خداوانت. اون اعمالی که انجام داده بودید، اون نمازهایی که به توی بهتون مقدر خونده بودید، ضایع نخواهد کرد. از اونها شما را بیپاداش نخواهد گذاشت. بیپاداشتا نمی کند خداوند. پس به ایمان در اینجا بر و سیاه و سبب نزول ایمان در اینجا معنای عمل خاصیه. و شاید معنای عمل عامی هم بیاد. مجادله اولئك كتب في قلوبهم الإيمان عمل عام مطلق المطلق عمل قلبي از محبات في الثق واليقين بياد بمعنى مجمل شرائع الدين يعني كل دين بمعنى الدين بياد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تمامی شریعت اسلامی علمی و عملی رسول الله از آشکار یا رسول الله اون رو نمیدونستن تا اینکه که خدا برنم وحث فرمودن و وحث گردن بر رسول الله صلی و, و جسر یاد آیه شورا پنجه هدو ما کنت تدریم الكتاب ولا الامان. ایمان ایمان در اجاب معنای دین یا شریعت در حدیث مهمشین حدیثی کفیم ایمان ام در ستون شعبه یا در عمر ستون شعبه در حدیث حدیث نو و مسلمی پنج ابوخاری نو و مسلمی پنج در این حدیث ایمان به دین و شریعت در مفهوم اصطلاحی کلمه ایمان همان طور گفته شد در تضاد نطق به زبان عمل جوار این اجماع را امام شافعی رحمه الله نقل می‌کند اجماع اهل سنت امام الشافعي می‌گویند اجماعه الصحابة ومن بعدها من بعده اجماعه الصحابه و من بعدهم ومن تابعین من ادرکنا من اهل العلم على أن الإيمان قول وعمل ونية أجمع الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن أدركنا من أهل العلم ومن أدركنا من أهل العلم على أن الإيمان قول وعمل ونية فإن قول إن كفت هذا إمام أرزائي إسحاق بن راهية مالك احمد و غیره نقل شده همون که امام ابو عبید قاسم بن مسلم در کتاب ایمانش نقل میکنه این علماء امام ابو عبید قاسم بن مسلم کتاب ایمانش با تحقیق البانی ببینید برگردید کتاب ایمانش خلاصه وحدت ایمان در رد مرجئه و خوارج بله؟ dele حالا ما قبل از این که مراتب ایمان رو تفکیک بکنیم مراتب ایمان رو بگیم چون خود شناخت مراتب ایمان کمک میکنه برای ما در فهم رسوس بعدی مراتب ایمان بالاترین رستش کمال مستحبه کسی که اصل ایمان را داشته باشه و کمال واجب را انجام بده و آن بی افضاید از سنت ها و کارهای دیگر اصل ایمان و کمال واجب را داشته باشه اصل ایمان و کمال کمال واجب الان کمال واجب میاد که چیه؟ و بر آن سنت ها و نوافل بیابضاید. بر اون اصل ایمان و کمال واجبش سنت ها و نوافل بیابضاید کمال واجب چی؟ کمال واجب همون اعراوی یاد دارید وقتی که من نظر رسول را الله صلی علیه وسلم گفتن که بر من چی هست؟ گفتن نماز و روزه و فلان گفتن که اگر من همین کار رو انجام بدم بهشتی هستم رسا چی خواهموندن؟ اصلحه این صدق اگر راست گفت همون طور که بهش واجبه انجام داد مفلش میشه رستگار خواهد شد بهشتی خواهد کمال واجب اون چیزی که واجبه به طور احسن عدا بو کنی بدون نقص از تمام محرمات دور کمال واجب نقص کمال واجب نقصان کمال واجب انسان اصل ایمان را داشته باشه لیکن سهلنگار باشه در نماز کندنش در انجام ساعاتش گناه انجام بده که اکثر ما اشتر در این قسمی نقصان کمال واجه دلیلم از این آیه آیهات از سوره فاتر ایسی و دو چنین خدا الله تلاشانو میفرمایان ثم اورثنا الكتاب الَّذین اصطفینا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب الَّذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه نگاه بکنید بحث مؤمنین عبادنا صفینا من عبادنا و نهای این در رد خوارج در رد مؤمن و تکلیف میونند ثم ورثنا الكتاب الذين صفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه این جمله نه ها کسانی که خودشون ظلم کردن یعنی اصل ایمان و کمال واجب دارد از اونها مقتصدن اقتصاد کردن بر اون چیزی که براشون واجبه و بر اون چیزی که حرام ازش دوری بکنن رحیر بکنن و من هم صابقون بالخيراتی بإذن الله و از اونها کسانیان که کمال مستحب را دارن بر اون کمال واجبهشون و از ایمانشون افضودن و مستحبات را انجام دادن و من هم صابقون بالخيرات از اونها هستند که. قدر و پیشه گرفتن در انجام کارهای نیک خب عدل بر تعریف اصلاحی ایمان بگیم یا یعنی موکل بکنیم در ساینده دیگی برد دو. کمالوال قسمت مقتصد. مقتصد خوش از اقتصاد میاد از اقتصاد یعنی اکتفا اکتفا بکنه بر آنچه که برش واجبه و دوری و پرهیز بکنه از آنچه که برش حرامه محرمات رو انجام نده واجبات رو انجام بده این میشه مقتصد و مقتصدی اکتفا بکنیم بر انجام داد نتاعات و دوریه بر فرهیز خب حالا بیام به بحث عدله بر شعب ایمان یا ارکان ایمان یا تعریف اصطلاحی ایمان. تعریف اصطلاحی ایمان. عدله بر تعریف اصطلاحی ایمان. ایمان. اولا اعتقاد قلب یا تحضیق. اعتقاد قلب یا تحضیق قلبی. تسرى حجارات أي فنزة كنيدري حجارات فنزة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يركبوا إنما المؤمنون الذين آمنوا الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يركبوا بدرسك المؤمنون كانوا يكيمان بالله ورسوله شهورا وبعد شك نكيرن شک ضد یقین و تصدیق درست شک شک ضد یقین و تصدیق پس این آیه دلالت بر صدق قلبیه مؤمنان داره مؤمنان حقیقی کسانی هستند که صادقانه ایمان به الله و رسولش دارند و الذی جاء بالصدق و صدق به اولائک هم المتقون صفات مؤمنة تحسيق بحق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون كيف تحسيق بغرورة كيف الله جل شانه فالتحسيقات إيمانة ونفسي هنا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون خب إن تحسيق كشامل أعتقد خالبه ممن أعمال خالبه اعمال خالب, أعمال خالب. اعمال قلب اعمال قلب آیه انفال رو داریم آیه دو انفال المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم اعمال قلب از وجل ترس از خدا توکل بر خدا این اعمال قلبی که از ذکر خدا و شدنه آیات خدا حاصل میشه در این آیه مصابقت داره برای این مساله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون پس ذکر خدایی که سبب وجل میشه سبب ترس میشه ترس مومنان و پازگشت مومنان به خدا میشه و توکل از ایمانه چون میگه این نمال مومنون درستی که مومنان کسانی هست که در قبال خدا خداچینین میشن و با خدا توکل دارن و توکلی که در این آیاز آمده ترسی که در این آیه اومده وجدی که در این آیه اومده همش چیه؟ اعمال قلب الله زیاده ادلیه اعمال قلب زیاده آیه اکسی بحره داریم من الناس من یتخذ من دون الله اندادن يحبونه تحب الله والذين آمنوا أشد حب الله حب ايمان بلن يقول بايمان انسان با حب غير خدا وبرت عبدالنستان هن حب بعد عبدالنستان حب غير خدا از خدا بلن يشهد مشرك شركة در ايمان بخدا اوورده بخطر همين مشرك شده والذين آمنوا أشد حب الله مؤمنان حقیقی حب بشون نسبت به خدا بیشتره پس حب محبت خدا بند از ایمانه همچنین حدیثی که خوندید انم العمال و به نیات سبب را بر اساس نیات گذاشته یعنی بر اساس اون که دارید شما سواب ببینید اج ببینید پاداش ببینید پس نیت میشه چی؟ عمل. عمل قلب. سبومن سومن رو میخوای بگی یا دبومن فرق نداره. که جز اعمال جواره هست چون بعض از علما در تحریف اصلاحیه ایمان میگن ایمان قوله و عمل و اعتقاد یا نیت و بعضی دیگر میگن ایمان شامل قول قلب و عمل قلب و عمل جوارح با نطق یا نطقه به زبان پس الان قول قلب رو داشتیم عمل قلب رو داشتیم میمونه الان اعمال جوارح و نطق به زبان نطقه به زبان أحدت زيادة أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله فنشلوا قلوا آمنا بالله قولوا. إنسان تشهدت النجوى هذا في صلنا مشي. أما أعمال جواره زيادة وما كان الله ليضيع إيمانك حتى نموه في داشتي. إيمان جزء النماذج. وأهم شيء الإيمان على هذا أن لا الله. دل الله أن الجوارح ترى. وأهم شيء أن دمبلة الآية المؤمنون الذين ذكر الله وجهات قلوبهم. دمبلة الذين يقيمون الصلاة انما المؤمنون تأخر الذين يقيمون الصلاة ومن رزقناهم ينفقون. هموندین میخوند پس مؤمنان حقیق اثانی که چی؟ نماز میکنن و زکات مالشونو رو میدن صدقه میدن پس زکات دادن نماز کندن هم که چی؟ جزء جزه ایمان جز اعمال چواره که جز ایمانه پس خلاصه خلاصه بحث چی میشه؟ خلاصه بحث که ایمان تعتقاده و قوله و نية اعتقاد بالقول وبالعمل كسي سوالي داشته و و دو يا ته تاقيم يكي اعمال ضروري يكي اعمال ضروري اعمال ضروري انسان که شامل عمل قلب و قول قلب و اعمال بیرونی انسان نطق به زبان و عمل جواره صرف مفهوم واضح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم